خب. باب و صفت الغسل باب چگونگی غسل غسل چطوری انجام میگیره یا بدعو الجنوب بعد تصمیتی به غسل یا به غسل کفه هی قبل ادخاله هیما فی میگه شروع میکنه شخص جنوب بعد از بسم الله گفتن به شستن دو کفه دستش سه مرتبه قبل از اینکه که اونا رو در ظرف ببره پس شخص جنوب بعد از این که بسم الله گفت قبل از وارد کردن دستات در تشت دستاشو سه مرتبه میشوید الان که شیر هست خب انسان راحتا ثم یقسلو ما بهی من نجاست و اذا بعد از این که دستاشو شست هر نجاستی و ازیتی که داره اونا رو میشوید ثم یتوضعو وضوعه لسلات سپس وضوعی میگرد همانطور که برای نماز وضوع میگرد ثم یقمسو فی الماء فیخللو ببللهما اصول شعر رأسه و لحیته سپس دو دستش رو در آف رو با خیسی دو دستش بونه موهای سر و ریشش رو خلال میکنه یعنی آبو ببونه موها میرسونه چی ریش چ موهای سر ثم يحثی على رأسه ثلاث حفیات من ماء ينوي بها غسل جنابته سپس مشت آب بر سرش میریزد نیت میکند اینجا غسل جنابت رو ثم یفیبو الماء على جميع جسده سپس آبرو بر تمام جسدش میریزد مبتدعا بمیامینه حتی یسل الماء الى جميع شعره و بشاریته در این کار شروع میکنه از راستا از چی؟ سمت راست بدن دست راست بدن خلاصه چیزای راست بدن تا اینکه که آب بتمام مو و بدنش پوستش برسه و یمرو الماء على ما قدر،, ما قدر عليه من جسده و آب رو بر هر اندازهی که توانایی دارد از جسدش و قد اکمل غسله بفردهی و سنته با این کار غسلش رو چه فرض و چه سنتش رو تکمیل کرده است پس آب بر بدنش با دستش میکشه تا جایی که توانایی داره منه و الواجب و و ثالثون انکان هناك نجاسه میگه در غوصل دو چیز واجب هستند و سه چیز البته اگر بر بدنش نجاسه داشه پس واجب های غوصل دو تا هستن و اگر چنانچه نجاسه تی بر بدنش بود اون موقع ستا هستن النیت و ایسال و ماهی الى جمیع شعری والجسد واجب های دوگانه یکی نیت هست یکی آب رو به تمام بدن به تمام موخا آقا کل بدن باد خیس باشه اینا دو تا واجب هستن از واجب های غسل اگر چنانچه بر بدنش نجاستی بود اون موقع واجب ها سه اون که و ازالتو ما علیه من نجسین اون موقع از بین بردن نجاستی که بر بدنش وجود داره پس اگر بر بدنش نجاستی بود اون موقع نجا... و... واجب ها چند تا میگه سه تا و لا يستحب له تر کل والاستشاق و ایلم یجیبه میگه مستحب نیست برای شخص که مزه و استشاق رو ترک بکنه یعنی مستحب بینه که مزمزه و استشاق بکنه و ایلم یجبا اگرچه که واجب هم نیستند ولا لا یلزمه امرار و یدهی جسده و لازم نیست که دستش رو بر کل بدنش چکار بکنه؟ بکشد ولو غاصف الماء ایناوین و خرج اجزهو اگر در آب فرو رفت غواصی کرد بک خورد بقول خودمون ها؟ فرو رفت در أب نية غسل داشت وخارج شد أزقاب أجزأه برش كافية غسل أنجام قرفته غسل تشده وكذلك غسل المرأة من جنابتها ولكن تزيد في تفقد جسدها لكثرة مغايبه وإن كان شعرها مضغفورا ووصل الماء إلى جميعه لم تنقضه وإن لم يصل نقضته حتى يمس الماء جميعه میگه همتونین هست غسل زن از جنابتش منطقه یا لیکن بیشتر جسدش رو بررسی می کنه به خاطر اینکه چیزای پوشیده زن بیشتر هستن جاهای پنهان زن چه هستن؟ بیشتر هستن جاهای غائب و پوشیدش لذا زن بیشتر مراعاعت میکنه و اگر موهاش بافته شده بود و آب به تمامشون رسید نیازی نیست گناه رو چکار کنه؟ باز میکنه و اما اگر آب نرسید یعنی بزیر موهای بافته شده اینجا رو میگه باز میکنه تا آب به تمامش برسه و کزایک غسل هم از حیضها و نفاسها و غسل زن از حیض نفاس هم به همین شکل هست ولكن لکن یوستحب لها انتطبه مخرج دم بشن من مسکن او غيری من طیب ان اعوز المسکه و امکان الماء وحده کافی هست میگه غسل زن بسبب به هزون هم به همین شکل هست ولیکن مستحب هست که مخرج اون اونجای که خون ازش خارج میشه مسکش بزنه یا چیزی دیگه از خوشبویی ها اگر مسکو نیافت این اعواز المسک یعنی اگر مسکو نیافت اگر چکه البته آب به تنهایی هم کافی ها میگه اگر, اگر این کارو هم نکرد غسلش انجام گرفته یعنی اگر مثلا از مسک استفاده نکرد غسل انجام گرفته خوب حالا که صفت غسل خوندیم بابو مایوجیبو الغسل باب آن که غسل واجب میکنه یعنی اون کارایی که به سببشون غسل چی میشه باله واجب کننده های غسل نه اون اموری که برا غسل نیازه بلکه واجب کننده های یعنی با این کارا شخص باید غسل بکنه والذی یوجبه بالغسل اربعت و اشیا اون چیزایی که واجب میکنند غسل چهار چیز هستن یشترک الرجال و النسا فی فیشعین منها در دو چیز زن و مرد با هم شریکن و تختص النسا و دو چیز مخصوص زنانه آه مردان اون دو چیز دیگه ندارن المشترکو فیهما اثنین احدوهما التقال و خطانین و هو تغییب الحشفتی فی الفرج سوانو کان ما اهو امزال او لم یکن اون دو مشترکی که مرد زن درش مشترک هستن دو چیز هستن یکیش فرو ملاقات کردن دو تا چیز خط شده یعنی منظور فرو رفتن حشفه زکر در شرمگاهه برابر است که اصلا انزال رخ بده یا آقا همینی که حشفه رو فرو برد غسل واجب میشه حالا چه معنی انزال بشه چه نشه و الثانی دوومی چیزی که بین زنان و مشت... مردان مشترک هست انزال المنی من جمعه او احتلامه خارج شدن منی هست حالا چه بر اثر جمعه هم به سری بازن باشه چه بر اثر احتلام باشه خواب دیدن درش باشه شخص خواب دیده و احتلام شده به شهوته و غیر شهوته چه با شهوت باشه چه با غیر شهوت فا اما الانزال المذی والود فیوجبان الوضوعه دونه لغسل میگه اما نازل شدن ماذی و وعدی فقط وزور رو واجب میکنند غسل رو واجب اگه ماذی بر اثر ملائبه با همسر، با اثر بازی کردن بازنه و وعدی آب یک انگام ادرار میاد فلو شک فی ما انزله امنیون ام ماذیون توضع ولو به بالغسلی کان حسنا اگر شکل در رابطه با اون چیزی که خارج شده ای این منی هست یا ماذی هست میگه وزو میگره و اگر احتیاطا هم غسل کرد کار خوب و پسندیده هست و الثالث سومی چیزی که سبب میشه انسان غسل بکنه المختص به نسا که خاص هم به زنان هست این دم الحیز پایان یافتن خون حیزه زنان ماهان خون حیز دارن زنای بالغ خون حیز که قطع شد باید غسل بکنه و رابع این و دم النفاس چارمینش هم قط شدن خون ولادت زنی حامله شده خونی میاد این خون که قطع شد غسل باید بکنه فعمل استحازتو فتوج بالوضوع دون الغسل یه خون دیگه هست اسمش استحازه هست میگه استحازه اون خونی هست که در غیر از ایام حیزه میگه استحازه وضوع رو فقط واجب میکنه غسل و واجب وأما الغسل المسلون فغسل الجمعة والإيدان والاستسقاء والخصوفين والغسل من غسل الميت وغسل الكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق وغسل الاحرام بحج أو أمرت والوقوف بأرفة والدخول إلى مكة والرمي والطاف أما غسل هاي الصنة. ما غسل هاي فرزو خوندي وجايك واجب بودان كي بود؟ جمع بود دخول حشف بود انزال منی بود، حیز بود و نفاس غسله های سنت از غسل جمعه، دو اید غسل برای نماز استسقا باران غسل برای دو نماز خسوف و کصوف غسل بر اثر غسل دادن نمیت شخصی که تو غسل داده غسل براش مستحب سنته غسل شخص کافر زمانی که اسلام آورد غسل انسان دیوان زمانی که بهوش مومد غسل برای احرام حج یا عمره موندن در عرفه، غسل سنت داخل شدن در مکه سنت و رمی، رمی جمره و همچنین تواف بس اینا از سنت های غسل بودن و, و ایجاب کننده های غسل